در این کتاب آسمانی اسلامه موج بایی حتمان بیاس اسباب و وسائل در زندگی دنیا در این کتاب آسمانی است وسیل سعادت بعد از مدن در این کتاب آسمانی است ما اینه میخونیم تا بفهمیم خدا چی گفته و بعد تبره فهمیده عمل کنیم همه ما نسبت به قرآن دید داریم نظر داریم آور داریم یه فکر در داریم بر کسی چیز این بیانی امیل المومدین در موری قرآن دارن یامقیل خیلی و دیدیشون خیلی محدوده. از محرفیتی کمپانی علم کمپانی در قرآن در اینا دو بود قرآن رو معرفی میکنند ولی خود قرآن خطون علاق آغه اینا هم با زمان قرآن بیان و هم با احمل ارائه میکنند ازا قلگو بر قرآن هم. این که فرمود ننیفتری و ما هر دو یک نه جدا کرد اختلافی بین این و بین او نیست، این که اون کتاب این امثال قرآنیست برابر این ببینیم امیر الماملین علیه السلام در این در درباری قرآنی کریم چه بیانی دارن ما هم رو منتبه کنیم با بیانیش. چاییشون در باری قرآن چم همه مق فرمکز و پرفایده است و شایست هستی ما دیدمونو فهمونو از قرآن کریم تجمیح کنیم با بیانیشون و خصوصی ها دیگیشون در باری قرآن از زبایه های مختلف بیان کردن ما هم نظر اونو منتبه و شد بکنیم چون اگر نظر کتا ها باشی امال هم این بله همون دید و نظر ماست برابرین اگر توفیق رسیم ما باشیم و نظر اپیر علیه السلام رو حاکم کنیم و نظر خودمونستو که قرآن شدیم حتما گرایش و دعوت و عمل به قرآن همون قبیتر و قبیتر خواهد شد حضاب ببینیم ایشون درباره باره قرآن شدیم چی بیانی بودن علممون و نص حالت خیلی آدم نصیحت میکنن خیر خواهی میخورن این خ خواهی دو عموماً به بانهه یکی که غلنش در مقام خیر اشتباه حرف بزن این همدن نه اما در مقام خیلی خواهیم به منظور محدود من بودن اطلاعات کتاب و اطلاع دادن یه چیزی رو اجتماعا در مقام خیلی خواهیم کسی ابلاغ کنم اجتماع هست اینجانی سنوی خیلی خواه در بایی قرآن کریم ما میدهیم وقت ما میخونیم نه احتمال خطا بدیم نه احتمال درد درد بیان اشتباهات به صورت نصیحت و خیر در مومن کار ما انسان هاست خدا نیاز بی حرفا نه خب قرآن هدایت میکن انسانو بارها اعلام فرمود که این هودن لنداسه من این قرآن رو فرست دم همه که انسانن راه زندگی احسانیت رو بیشون یا سیاسفی بیدین بادین گرشید بر از هر کسی انسان عقل داره خدا میگه راه زندگی صحیح تو در دنیا اینه این هدایت کرد اما بعضی در مقام هدایت برکس آدم رو گمراه میکنن خیلی هستن حرفای هدایت ها میزنن اما گمراه کنن آدم قرآن کریم که سفن خداست هدایت میکنه اما انسان رو گمراه نمیکنه اون را و هدف واقعی رو بران میکنه و برانیم گمراهی اینجا تصور رده روزای ایسا با تمام باید بخونه و بفهمه و بکار ببنده هیچ اعتبال خلاف هم نباید بید چون حرف انسان نیست ولی محدث و لا یکزه قرآن با عدم حرف بزنه خیفانه خداستی بیم در نوایت آمده هر مشروع ما خواستی با خدا حرف بزنی نماز بخون نماز حرف در با خداست هر وقت خدا با تو حرف بزنه قرآن بخوریم برابر قرآن سخن خداست آدما که حرف میزنند دو جوره گاهی راسته و با ما واقعی گاهی دروغه کم نیستن کسانی که حرف بزنن ولو بدون قصد دروغ دروغ به گربت خلاق و حرف بزنن مضافن بلی اینکه بعضی هم؟ بردن دروغ را انتخاب بکنن اما قرآن کلیم کل لحفش مطابق مواقع و راستی را برابر این احتمال کس به این کتاب وجود کند و ما جالسه آز القرآن احد الا قامن و به زیادت او نقصان زیادت فی هدا او نقصان من همان. هر کسی این رو خوند خوندن قرآن اینه مجالست با قرآن ولی آدم قرآن رو به زیر تاکشی باش این نبیدن مجالست باید بخونیم تا بفهمیم خدا به من و به ما چی گفته این مجالست با قرآن هر کسی قرآن بخونی یکی عدد فایده در میبره اگر گمراه هدایت اگر در هدایت کم دره تکمیل و تکمیل میشه برابر هر کسی با قرآن کریم مجالست کنه بی فاید بلند نخواهد شد و اعلمو انه ليس علا احدین بعد القرآن منفاقه در موضوع هدایت بعد از داشتن و بلد بودن قرآن کریم ما در هدایت به هیچ چیزی کتاب دیگری نیاز نداریم تمام چیزها که در هدایت ضروری و لازمه خدا در گناهر کریم بیان کرده شما همینو انجام بدید وارد راه بشتی و بشتید و نهایتشم بشتید که الله بنابراین ما در کسب هدایت به هیچ کتاب دیگری ریل از قرآن نیاز نداریم بیره اگر خدای موتا کتابی داعتش راقص فیرستاده بود و موتایج بودیم بس کتابی دیگر استفاده کنیم گمراه می شودیم چون شود دیگر بلند نیستن که خدا به انسان عقل داده برای تشریص فهم اما این عقل یک کار ازش بر نمیاد با همه ارزش هاش یک کار نمیتونه بکنیم و اما اینه که راه زندگی انسانی رو به وسیله عقل انسان بکنه تیگه کنه نمی کنه تمام انسان‌های منحرف و گمراه آقلن عقل دارن اما تالا نتونستن درست بفهمن با عقل که من که انسانم راه زندگی انسانی چیه؟ امروز قبل اضافه بر عقل علمم داره، تکنیکم داره، سر داره اما با همه اینا نتونست بفهم انسان چگونه باید زندگی کنه تا چه زندگی انسان مثل حیمون ها زندگی میکنن از آدم کشی و قصد و قارد زندگی زندگیش رو تحمیل اغلب عقلم دارن علمم دارن اما عقل بر این راه هدایت کافی نیست جذافر بردگار و از اول برنامه هدایت رو خودش با به حکمت خودش تنظیم کرد داد به دست اول پیغمبر گفت ابلاک خود آمد تا آخری کتاب قرآن کریم اجازه نداد هیچ کسی خودش کتابی هدایت تجزیم کنه چون کار اخزم بود پرابری از اول خود خدا راه زندگی انسان رو که مناسب با انسانیت انسانه انتخاب کرده و به وسیل امجاب انسانها ابراخ کرده گفته این گونه زندگی کنید در انسان قرار نداده اگه می داد می دونستی که اختلاف می افته یه چیزی می گفت نهایتا انسان رو یه موجود حیوان صفت باعرفه می کرد و فقط با رو بخور و ببیره امروز اینه دیگه برامر این قرآن کردیم برای هدایت انسان در زندگی کاری کاری در برار کلیمه هست این دوتی دیش هم باید شدید در آینده هم کافی باشه، ناقض ناقضی باشی و پیغمبر اکرم صلاوات خدا بر او نه فرصت داشت. و نه موانه اجازه میدادن که همه حرف رو بزنی مناسب با فرصت و مناسب با موانه و مختزیات اون چرای نازم بود گفتش. یکی از چیزهایی که گفته شد مسئله یه جانشینی بود چون خیلی از مطالب اسلام رو جانشین ها معیق کردن اونها ها به قرآن که کافی و کامل اینم قرآن معرفی کرده اونجا گفته عتی الله و عتی الرسول و اولیل بر ممکن فرمان کداره در قرآن اطاعت کنید اطاعتش واجب بقیم و سلات. و آت و زکات مسایر امر و رحیان مال خداست اتاعتش واجب و عطی و رسول رسول ایرامی ما هم که ساخته و پرداخت شده خداست و تنبیتش مانند تربیت قرآن کریمه اینم مال امر و رحیان سادر کرد اتاعتش به واجب و نازمه خب اگر برای که به دنیا میرفت دیگه امرو رای در شرایط مختلف زمان و مکان نیاز میشه میاد که اهم باشی و نه باشی دستور بدن ازا فرمون به اول امره می کن هر کسی از شما مسلمان، اونا حق فرمونده ای داشت مولی لب نیست که هر کسی فرمونده شد یکیزی کودتا کنه بیان فرمون بده یه اول بهم کرده اما حق دهی نداری جواز در دهی نداری خونه که بتونه جواز شهر ساخته بشه چه کاروش خراب میکنه دیگه ولی اگه کسی بیا میگه من شاهم این کارو بکنم این کارو نکنم برگت برو از هر کجا اومدی اونجا چه تو؟ اما اگر خود پیغانبر از که فرمانش واجب شد این از خدا جواز آورده خدا گفت: اتیار رسول جانش پیغمبر اکرم پیغمبر اکرم دستود داده که بعد از من اطاعت فرمانه اینا طبق و قرآن کریم واجه اینا اولین هم من دیگه هزار روز قدیده. خب امیل رو معنی پیغمبر اکرم آوردش باره که گفتیم بعد از من اینه این شد ولی امن مسلمین جواز عبر و رح پیدا کرد بنابراین این ستا تا خود قرآن کریمه اگر ما به قرآن کریم عمل کنیم هر سه اینا درست میشه کاری شد اتیال الله در قرآن اتیال رسول در بیانت کنیشون اول نمنم در بیانت تو جمع اینا کافی و کامل نیست این ما به هیچ کتابی دیگری در هدایت نیاز نداریم اگر احساس نیاز کردیم افتادیم کتاب های مختلف حتما راه رو را مخایی کرد تا قوی مختلف خدا حرف می زرن که را اسمتی علمی ندارن که قایش نبا بکنن این که ما بریم در جتاها مسیح مختلف بیان شده اون همین کار خداست خدا یکی هر کشم یکی آدم ها متعددن هر کدوم یک جوری می و ما بخواییم بریم تو این جور با جورا اون حرف خدا هم یادمون گیری لذا هر کسی جالس الگرآن یا نعمت هدایت گیرش میاد یا یک در هدایت حبت مشکل مانا فستش بو بین ادوائه انسان بیماری زیاد داره بیماری روی به خصوص اقای و افکار نرافی خودش که علم نیست باید استفاده کنه مدنه علمم در اشتیار همه نموده به نام علم خیلید جهالات تو خورد رفته اینو همه هست اضافه هموندن اگر این نوع بیماری ها اقاید این حرافی باورهای غلط اینو رو با قرآن تقریح کنید خودتون از این بیماری ها شما بدید بهی علا لعبای کم در شداره دستگنانی کمک میخواهید شما میگه الانچکار مورد بکنیم جنگ پهکی فتنها بلند شده احزاب مختلف کتاب های مختلف راه های مختلف امریکا فول داده آدم خریده مشغول کاره اینو همه اثر درند در جامعه دیگه حالا قسمت به خیلی ها بشه شدت خیلی نمی تو این حرفا تو این راه ها چه کار کنن. کدوم انتخاب کنند فرمود شهید در شدائه در قرآن استفاده کنید قرآن یه حرفی بزنه که این موجودها رو تصویه کنیم و اون شخص بشه کدوم حق و با کدوم باطن و رو قرآن سخن خداست کلام خداست کلام خداست کرام خداست از ازش و امیت خیلی خیلی والا برخورداره وقتی ما احتیاج داریم که زیادم داریم و از خدا بخواهیم شیست دریافت یافت کنیم و بخواهیم گفتنیم قراره کریم که سخن خداست بیترین واسط است بیترین وزید است خدا رو قصد بگیم و قرآن یا حتی با محبت قرآن از خدا بریم چیز بخواهیم این هم به قرآن واسط است خدا دوست داریم همون بونه که واسطه بردن حضرات محسومین در دعوات موجب اجامته چون خدا اون رو دوست داریم دوست انسان‌های داری سالهای محتاج کمیشه محتاجم و تأمین نیاز و احتیاج که از خدا میخوان اینا رو اسم ببرن اینا سری زمنا باشن جاوی اینا رو فرامش بکنه خدا اجابت میکنه محمولا مثل همون حضرات محسومی چون ایترنت هم جایگاهش همون جایگاهی قرآنی که دیدین دیدیم و میلون قومنیان احسان تسال فرامدن هم به احسن منازم قرآن ازرت رو اونجوی که قرآن جادر کجاست اونجو جا بدین هر دویه جمعنیف تریقا و منش همینه ظاقرن محبت اینم بشه ای ای اجابت داست و توجه و الهی به محبت قرآن بریم خدا خدا ببینه این دل کلام خدا رو دوست داره با اون آدمی که میاد اما این محبت توش نیست خدا بیه خیلی فرق بینه شده برای به خلقه به وسیلی قرآن از مردم انتظار کمش ما دی نداشته باشید قرآن نایمه ده بر که ما مثل این, این بزرگ رو بیریم پایی کشی کنیم یه تا من دو تا منم بردم مسئلت کنیم کنیم این کار خیلی غلطه بردیم این عظیمی رو سمیر کردنه کتاب و هدایت رو آورده نون کردیم این ده ما توجهن عباد و الالله به مثل اینقدر مقام مران عظیمه که نباید مقدمه ای مادیات مختصر قرار بگیره هیچ کسی به طرف خدا نرفت تیب به دستور قرآنی کرده اینقدر مهمه اینو فقط بسیلگی رفتن به طرف خدا قرار بدین این برای نازل شده سرین که اسلام در مسئول مادی زندگی انسان هم دخالت کرده اینه که اگر دخال هرده کرد تمام عمر امکاناتو در راه همین مالکه یا دربه می دیگه فرصتی برای معنی بیاد. باقی واقعی نمی یه یزای تنظیم کرد امور معاشماندی انسان رو که فرصت پیداشه به انسان به کارهای معنی بپردازه برابر این, این باعث می که احسان بهترین چیزی که با اون بتونه ترقیل کنه بره صرف هدف تصویر عملهای قرآن کریم به اگر ما بکار ببندیم بکشان الله با بکاری خدای مطاعت و عمل و توفیق بیش از بیش برحمد کنید اگر قبلاً هم عمل میکنید قرآن کریم از قرآن ببندیگی بیشتر و بهتر عمل کنیم بکشان الله از آرماع تقیی بگی خاتم و همه حضرات ما داره صلاح و سلام. Oh, this is a lot of work. Oh.